نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان درویش از قصه های جادوی است نقش آب در این روایت قابل تعمل است درویش آب فروش است پادشاه از میان آب به دنیای دیگر می رود پین دوز با فرو بردن سرش در آب از سنگ شدن خود جلوگیری میکند می کند پادشاه هم با فرو کردن سر در آب به دنیای خودش باز می گردد. متن کامل روایت را میآوریم. و من شما رو به شنیدن اون دعوت میکنم. یه پادشاهی بود که نظر کرده بود که صد تومن به مردم فقیر و بیچاره کمک کنه. پولو داد به وزیرش و گفت برو اگر یه فقیری یه بیچارهی دیدی این ست تومن رو بهش بده. وزیرم رفت توی بازار رو توی شهر گشت. دید توی سرما درویشی یه لونگ یا پارچه بسته به کمرش که دور تا دور لونگش یخ زنگوله بسته. یه مشک یا کیسه آبم انداخته رو دوشش داره آب فروشی میکنه. وزیر گفت معلوم میشه که این خیلی فقیره به درویش گفت این سطمن رو بگیر و به جان پادشاه و وزیر دعا کن درویش گفت پادشاه خودش اردو داره قشون داره حقوق داره. این پول به درد خودش میخوره وزیر برگشت و قضیه رو برای پادشاه تعریف کرد پادشاه به وزیرش گفت بلنش رو بریم ببینیم این کیه که پول پادشاه رو رد میکنه؟ اومدن تو بازار. دیدم بله درویشی یه مشک آب انداخته دوشش داره آب فروشی میکنه. دور تا دور لنگش یخ زنگوله بسته. سلام و احوال پرسی کردن. پادشاه گفت این پولو و به جان پادشاه دعا کن. درویش گفت پادشاه خودش اردو و قشون داره این پول به درد خودش میخوره پادشاه گفت حالا که پول پادشاه رو نمیگیری غذای پادشاه رو هم نمیخوری درویش گفت چرا غذای پادشاه رو میخورم با هم راه افتادن و درویش توی قصر پادشاه غذایی خورد بعد گفت قبلهٔ عالم به سلامت باشه فردا در خدمت شما هستم پادشاه گفت چند نفر؟ درویش گفت چهل نفر پادشاه گفت کجا باید بیایم؟ درویش یه جایی رو معلوم کرد و فردا، پادشاه، وزیر و وکیل رو برداشت و جلو افتاد بقیه دنبالش رفتن و رسیدن به درویش درویش راه افتاد و بقیه دنبالش اومدن تا رسیدن به قلعه درویش کلیدی از کیسش در آورد. کلید و انداخت در قلعه جرینگی زنجیرها از هم باز شد گفت بفرمایید پادشاه و همراهاش وارد شدن توی اتاقی نشستن درویش گفت قربان قلیون میل دارید یا چای؟ پادشاه گفت قلیون درویش صدا کرد قلیون بیارید چهل نفر با چهل تا قلیون سر و ته نقره وارد شدند و دست هرکدوم کدوم یه قلیون دادن و رفتند پادشاه یه نگاه به وزیر کرد وزیر یه نگاه به پادشاه دوباره درویش صدا کرد چای بیارید چهل نفر با چهل استکان سر و ته نقره وارد شدند و استکان ها رو به دست هر کدوم دادن و خارج شدند. پادشاه یه نگاه به وزیر کرد و وزیر یه نگاه به پادشاه کرد این چه آدمیه؟ آدمی خوردن. درویش گفت قبله عالم به سلامت باشه اگه میوه تازه میل دارید به باغ بریم. پادشاه گفت و تو زمستون و میوه راه افتادم درویش کلیدی از کیسش در آورد و در قلعه رو باز کرد. زنجیرها ها جرین جرینگ جرینگ صدا کردن و در قلعه باز شد. پادشاه دید باقی چهار خیابون، درخت ها همه سبز، بلبل ها هم رو گل و درخت ها آواز میخونم پادشاه دستمالی درآورد و از هر درختی میوهی چید و تو دستمالش ریخت. پادشاه گرمش شد. درویش گفت قبله عالم به سلامت باشه. اگه خیلی گرمتون شده رختاتون رو بکنید و تنی به آب بزنید. پادشاه رخت و لباسش رو کند و رفت توی حوز. درویش گفت اگه میخواین سرتون رو زیر آب کنید و بیاین بیرون پادشاه سرشو کرد زیر آب و وقتی اومد بیرون دید یک بیابان بر و برهوت نه از باغ عصری بود و نه از درویش دو دستی به سرش زد و گفت ای وای دیدی چه کلاه گوشادی به سرم رفت راه افتاد و دو شبانه روز تو بیابون سرگردان بود نه آبی بود و نه آبادانی بعد از دو روز و دو شب رفت و دید یه شهری از دور پیداست اونقدر رفت و رفت تا به شهر رسید خوب نگاه کرد دید همه آدمای شهر از سنگ هستن تمام دکان ها باز و برقرار بود اما همه مردم شهر از سنگ بودن پادشاه وحشت کرد همونطور که توی شهر می رفت دید یه پین دوزی کنار جوی آبی نشسته و به اون گیوه یا کفش کوک می زنه. پادشاه گفت بابا این چجور شهریه که شما دارین همه مردمش سنگین، هن؟ پینه دوز گفت یه درویشی هست میاد جیغ میکشه همه مردم سنگ میشن پادشاه گفت پس تو چرا سنگ نشدی؟ پینه دوز گفت هر این درویش میاد من سرم میکنم توی جوی آب و صداشو نمیشنوم پادشاه گفت چه وقت میاد؟ پینه گفت اومد اومد برو تو آب برو تو آب پادشاه سرشو کرد زیر آب وقتی در اومد دید دوباره توی همون باغ و درویش کنار حوز نشسته لباس ها و دستمال و میوه هاشم همونجاست. چیزی نگفت بلند شد و لباس رو پوشید و اومدن پادشا کنار وزیرش نشست و گفت ما چند روزه که اینجا هستیم وزیر گفت قربان قیلیون ها رو که آوردن هنوز نبردن، پادشاه گفت حرف مف میزنی دو شب تو بیابون سرگردون بودم تو میگی قلیونها رو هنوز نبردن؟ چیزی نگفتن بلند شدند و خداحافظی کردند و رفتند پادشاه رفت و بر سر تخت پادشاهیش نشست و به سربازهاش دستور داد که قصری در فلان جا هست برین و شو که یه درویشی هست بگیرید و بیارید ببینم چجور آدم ایزادیه سرباز ها رفتند و هرچه گشتن نه قلعهی پیدا کردند و نه مردی درویش از روی متن چاپ نشده افسانه های فراهان هوشنگ فراهانی آخرین بازنویسی؟